ما بحث این رو کردیم که بحث شناخت خداوند، اینه که چطور میتونیم به خداوند پی ببریم. و بحث اینجا رب کردیم، گفتیم که اینجا معنیش معبوده. نه اینکه بحث اینکه ما اعتراف بکنیم و بدونیم که خداوند خالق از خیر. خداوند خالق و معبوده. و ادله ها رو گفتیم که دیگه الان نیاز به بحثش نیست. و بحث اینکه چطور به خدا پی ببریم که خداوند خالقه و خداوند یک تاس در خلق آفرینیشش. گفتیم که قبلا بحثش شد بازم دیشب بحثش کردیم در دو جلسه بحث شد به عنوان فرمول قبلا بحث شده بود دیشبم بازم گفتیم که اثبات وحدانیت خداوند یکتایی خداوند با ادله شرعی هست و ادله کونی ادله کونی نگاه کردن در آفرینش و خلق ادله شرعی ادله ای که در قرآن از ازش یاد شده و 1400 سال قبل خداوند متعال رسول الله صلی الله علیه و آله رحم و الان ما آثار و نتیجه اون بیان ها اون مسائلی که خداوند در قرآن ذکر کرده رو الان می‌بینیم خب پس این معرفت العبد ربه بازم باز دوباره تکرار میشه همین مسئله دور شرحش رو خدمت و دینه اینه که ما دین خدا را بدونیم چه دینی بدونیم الان ما به عنوان مسلمان چون رسولمون محمد علیه الصلاه و السلام خاتم النبین هست باید بدونیم که دینمون دین کاملی هست دینمون آخرین دینی هست و غیر از این دین که ما در ما به اعتقاد داریم غیر از این رو خداوند از ما نمیپذیره ان الدین عند الله الاسلام و من يتبع غیر الاسلام دينا فلن يقبل منه کسی غیر از اسلام بخواد دینی بپذیره خداوند ازش نمیپذیره کافره کسی اسلام رو نپذیره لازمه این اسلام اعتقاده به قرآن و به سنت لازمه شه اسلامی وجود نداره مگر اینکه همراه اون اسلام چی باشه اعتقاده به قرآن و اعتقاد به اعتقاده به سنت وگرنه دیگه اسلام معنا نداره اليوم اتملت لکم دینکم دین کامل شد چطور کامل شد با قرآنش و عنوانش و با سنتش بنوان مبین قرآن درسته قرآن کامل شد لازمه کامل شدن قرآن کامل شدن سنت لازمش کامل شدن دینه. و تو علیکم نعمتی نعمت خودم را بر شما اتمام کردم پس نعمت خیلی بزرگی هست هم دین اسلام و هم پیغمبر پیغمبرمون رسول الله صلی علیه وسلم که فرستاده شده برای حشدار دادن و تذکر دادن برای تربیت ماها برای اینکه خدا خداشناسی را و خدافرسی را به ما یاد بده یک شخص مومن باید پروردگارش و حقوقش را بدونه باید دینش را و حقوق دینش که باید انجام بده هم بدونه و این چیز دونسته نمیشه مگر با تطبیق قرآن و سنت قرآن قل أعطيا الله. كده زيادة ده القرآن. الله زيادة تكرار ده القرآن. هر المؤمنين ميدهن بود إتعاتس الله بإن إتعاتس الله تعاتس شيء تعاتس قرآن. مي من إتعاتس رسول. رسول الله صلى الله عليه وسلم زنده بدن. إتعاتس شميكه بدن. تأقواله وأفعال كيف وش إختلا باد. إختلا بيش ميكادا. خدوا عني مناسككم صلوا كما رأيتوني وأصلي. نماز بخونیم اونطوری که من نماز می خونم منافعتتون از من میگیرید از فعل از رفتار و از اقوال رسول الله صلی الله علیه و آله سلم وظیفه بود که بگیرن الان ماها هم نیاز داریم که درایت داشته باشیم نسبت به با اقوال و افعال و سونا صلی الله علیه و سلم تا تا را درست بفهمیم ما نمیتونیم نماز بخونیم جز این اینکه بریم احادیث و کنار را هم دیگه بذاریم و بدون که رسول الله صلی الله علیه و آله چطور نماز کنه و ما هم نماز بکنیم. پس لازمه شناخت دین اسلام شناخت قرآن و سنت و شناخت تشریعاتی که در این دو تا اومده و بدونید که این دو تا از هم جدا نمیشن این دو تا لازمه هم دیگه تا روز قیامت لن یتفرقا حتا يرد علی الحق تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها این محجة البيضاء هست سفيدة براي اون شخصی كدانا هست شبش بسر روزش يعني آسون ساده و واسحه این دوتا از هم دیگه جدا نبیشن قرآن و لا يتفرقا يتفرق لن يتفرق يعني كي قرآن و حتى يرد علي الحد فا این بحوز بخيبندن این قرآن و سنت پیش من در حوز یعنی تا روز قیامت از هم جدا نمیشن نه از معجزاتا این حدیث دلالت بر این میده که همونطور که قرآن حفظ شده هم حفظ شده چون حفظ قرآن بدون حفظ سنت معنا نداره وقتی خداوند در قرآن میگه و انزلنا ایلیتا ذکر لتو بینا لناسی منوزل ایلیهم فرین که قرآن را تبین بکنه برای چی؟ برای که ما بفهمیم یاد بگیریم. نه اقیم به چه معنای داره چطور نماز بخونیم پنج بعد نماز بخونیم چند رکعت نماز بخونیم ما نمیدونستیم یا باید وضو بگیرین چطور وضو میگیرید بلی احکام وضو ماده احکام میراث ماده مفصلش بلی با این وجود یک سری احکام هست که ما برش مطلع نیستیم نمیتونیم اطلاع داشته باشیم ما در با رجوع به سنت رسول الله علیه و صلوا همین رسول الله صلی الله علیه و وسلم این دوتا از هم دیگه جدا نمیشنن این اسباب تنبیه و هشداره به مؤمن علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین من بعد عضوا عليها بالنواجد نواجدان مثل دندانهای آسیاب سفت و سخت بچاسید بچی به قرآن و سنت بعد حسن بعد يا حسن میگن خب خداوند در قرآن گفته و نازل نمون عليك الكتاب تبینا لكل شيء قرآن چه بر هر چیزیه قرآن اصل و سنت فرعه اگر اون سنت اگر اون سنت در قرآن ما اصلش پیدا نکردیم ما نمیگیریم ما ملزمیم به قرآن خدا ملزممون کرده به قرآن و قرآن همه چیز اومده و ما میتونیم درکش بکنیم اگر نتونستیم در بیاریم بدونیم که اون سنت مشکلی درش هست بازی اینکه نیازت پیدا نکردن، قرآن قرآن. نمامدن سنت مسیح، قرآن همه چیز توش هست. خداوند در قرآن میگه ما صرفنا في الكتاب من ما چیزی در قرآن کم نگذاشیم. یعنی همه چیز در قرآن هست. ولی خب باید مادرش بیاریم. ما باید در قرآن اصلش رو پیدا بکنیم. امام شافعی فقط قبل از اینکه وارد این مسئله بشیم، یک مسئله این مسئله یعنی توضیح بدیم، شفاف امام شاطبی وحیمه الله میگوید درست قرآن تبعیم کرده همه چیز و همه چیز درش هست ما فرات نفل کتاب میشه چیز در قرآن از قلم نیفتاده که ما میدونیم بیقیم که حرمت گوشت اولاغ در قرآن نیست اصلی هم در قرآن نداریم براش حرمت گوشت اولاغ و ارث میراس بردن مادر بزرگ و پدر بزرگ بحثش در قرآن نیست نه اصلش ن ولی اینکه چون خداوند در قرآن گفته و ما اتعتم الرسول فخذو و ما نهاكم عنه فانتهم ما میدونیم که چی؟ یک سری احکام هست که در قرآن نیومده. خب پس چرا خداوند گفت بیان لکل شی؟ تبیان و بیان همه چیز هست؟ جواب و پاسخ را از این کتاب می کنیم. کتاب الحیده هست تألیف امام عبدالعزیز بن یحیی کنانی مناظری هست و با بشر بن در بحث کلام خدا. فقط من یک قسمتش می خونم. بحث شناخت لغت عرب در استنباط احکام ما نمیتونیم این آیات را تفسیر بکنیم مگر اینکه کل این آیات را کنار هم دیگه بذاریم تا این که اون معنا مفهوم درست ازش فهمیده بشه یک مسئله کلا بحث بیانی هست این مسئله من میگم یک مسئله دیگه هم باز اگر فرصت شودم باز بحثشو هم کرد. اینجا در مناظره چنین میگه امام عبدالعزیز ابن یحیی الکنانی یقول رحمه الله فأنزل الله القرآن على أربعة أخبار خاصة وعامة أخبارك دار القرآن ماذا؟ شوارك اسمته ما فمنها خبر مخرجه مخرج, مخرج الخصوص خبرك خاصه, خاصة ومعناه معناه معناه معنى الخصوص وهو قوله تعالى إني خالق بشرا من طين من بشري أسقل فريدام من زركي أدام أسقلون بذلك أدامي وقوله قوله إن, إن مثل عيسى عند الله آدم. مثل آدم مثال شو مثل آدمه پدر نداش كبابا پدر خلقات بشه كي؟ عيسى ابن مريم ثم قال يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكره وأنتا أي مردم شما از نر وموضي خلقات يارين آيا آدم هز نر وموضي آیا عیسی از زن رو مادر دقت شده؟ از پدر و مادر خلق شده؟ پدر داشته؟ آیا آدم پدر داشته؟ این خبر رو ما چجوری میفهمیم؟ اخباری خاص که مخرجش خاصه. چون جاهای دیگر خداوند آدم و عیسی را استثناء کردند، اونها اخبار خاصی هستند متعلق به خودشون. اینجا هم بحث ما عدا از آدم و عیسی از بشریته که از مرد و زن خلق شدن، تمامی بشریت. پس آدم از این آیه استثناء میشه. یا ایه اي الناس كيف تسسسنا ميشه؟ آدم وعيسى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى خطاب واضحي يا أيها الناس خطاب عامني خطاب خاص همي بشريات جزء آدم وعيسى والناس اسم يجمع آدم وعيسى وما بينهما اسم يجمع آدم وعيسى وهم يجب أن فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعني آدم وعيسى همي مؤمنين ميدون أنك دارئنا ايه آدم وعيسى شو من لأنه قدم خبر خلقهما شو خبر خلقته شو قبلان جوفتك شو خلقته شو ينو خبر معناه خاص دارهون خبر ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه الخصوص خبر عام ومعناه معناه خصوصه وهو قوله رحمة وسعت كل شيء رحمة من هم جز فرادرفة جهنم رحمة خذها فرادرفة خير ان جه عذاب رحمة داروشديس ونجده إن يكيدا رشني فعقل عن الله فعقل عن الله أنه لم يعنى إبليس، قدر إبليس الرحمة يكون في من تسعه الرحمة، ل لما تقدم فيه من الخبر الخاص قبل ذلك وهو قوله لأم لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، السوء أم صلاته جهنم بورمشة، بس إن خبر عام، فلما عناش خاص. رحمة الله رحمة وسعت كل شيء همجرى فراغة رفته بل إن همجرى مخصوصة كي بهشتيان مخصوصة كي بهشتيان ومؤمنان فصار معنى ذلك الخبر عام خب الخبر العام خاصا معنى خبر عام رحمة وسعت كل شيء خاص لخروج إبليس ومن تبعه من سعة رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء بخاطر إنك إبليس أظنها السفنة و منها خبر مخرجه مخرج الخصوص مخرج الخصوص ومعناه معنى العموم خبر مخرجه خاصه معناش عامه وهو قوله وانه رب الشعراء فذوالن پروردگار شعرا یک ستاره ای ستاره شعرا آيا پروردگار دیگر جهانیان نیست فقط پروردگار این ستاره هست؟ خبر خاصه معناش عام یعنی پروردگار همه هست خبر خاصه معناش عامه فكان مخرجه خاصا ومعناه عاما ومنها خبر مخرجه مخرج المخرج العموم فمعناه العموم خبر, يعني خبر مع عام معناه عمومه مثال ايش نجد به خلق السماوات والارض وصلنا زمان العافيه معناه عام مخرجه معمه هم مخرجههم معناه عام مع عاما. هم يا سامون ها زين اخريده نياذ وتخصيص ونمدير التبيين وينه ونمتع نادر که بگیم ای این خاص، این عامه نه عامه مخلاجش عامه معناش هم عامه خب الان اینجا چه ربطی داره به این مسئله ما؟ وقتی خداوند اینجا در قرآن میگه ما فرط نه الكتاب من منشی ما چیزی را در این کتاب از قرآن از در این قرآن چیزی را از خلم نیان خبر عامه مخلاجش عامه ولی معناش خصوصه از خود دونستی از دیگر آیات قرآن مثل خداوند. یسألونک عن الساعة ایان مرساها مي از این میپرسن از قیامت که که برپا میشه قل انما علمها اند ربي علمش میشه پربردگاره آیا همه علوم همه ایسان خاطبا در قرآن گفته نه همه چیز نگفته مثل چی نگفته قیامت کی برپا میشه چطور برپا میشه و به چه صورته و در چه زمان و تاریخیه پس خبر عامه معناش خاصه معناشیه یعنی اون چیزی که شما بهش نیاز دارید پس ما اعتقاد داریم دینمون دین, دین اسلام دین دینی هست که صالح و مناسب بشریت برای عصر نبوت و عصر حاضر دین کاملیه هیچ نقصی درش نیست اون چیزی که نیازمند بشریت نیازمند اون هست برای اون عهد و اون مقام و برای این عهد و این زمان خداوند در قرآن و سنت اوورده بحث کرده بر رسول الله علیه در قرآن و سنت اون چیزی که ما نیازمندش هستیم خب آرازی سوالاتی پیش میاد خب ما خیلی از مسائل داریم امروزه پیش میاد ولی ما اصلش پیدا نمیکنیم نه در قرآن در سنت خب بله به خاطر همین خداوند در اون جایی که ما به نتیجه نمیرسیم یا دچار مشکل میشیم احاله بهم میده به استصحاب فهم مؤمنین یا حاله مون یا احاله احال بهمون میده به قیاس چنانچه چه علما کردن یا اجماع که موم شافعی از فرمودی خداوند استنباط میکنه و مگیوشق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین سبیل المؤمنین اینجا المؤمنین معرفه است کی از ها؟ صحابیه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و بودند اینجا فهم صحابه است فهم مؤمنینی که در اون دوران بودند امام شافعی رحم الله میگه این دلالت بر اجماع میده که یک اصل یک بره از زمان اگر اتفاقی رخ کده کردن اگر اون در قرآن و سنت نبود به اون مراجعه بکنید دیگه نبود در اجماع میریم به قیاس نیست مسئله ای که ما نتونیم اصلش رو پیدا بکنیم یا اجماع درست نیابیم فهم از مؤمنین براش پیدا نکنیم بخاطر همین در اصول فقه علما خاطرنکن از وقتی که نوشتن از خلف و سلفش یک مسئله داشتم به اسم احداث قول جدید یک مسئله ای که در اون زمان رخ نداده نبوده یا بوده شرایطش و یک مسئله رو تبیین کردم با توجه به ادله بعد طرف مقابل بعد از 14 قرن الان گذشته طرف بیاد یک فهم جدیدی برای خودش اختراع بکنه مثلا بیاد از سروده خداوند والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو بيات يك سهم جديد بالنسبه الى انه سهم جديد اختراق ادا بيات بگه بله شون خدابن گفته والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو مطلقات خدابن وقتي اسم طلاق مطلقه روشون گذشت كسه قرو ازشون گذشته يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو پس اگر شوهر اوماد طلاق داد همسرش و همسرش رو دوباره برگردون این ورس محسوم نمیشه اگر 10 تا هم باشه احادیث عبدالله بن عمر که در صحیحین هست که میلیت که من زنم تلاق دادم طلاق بدعی در حیث بود رسول روش انکار میکنه و در روایت دیگه میگه حسبلی طلق این حدیثی به همه مسترب رد اصلا قابل قبول نیست اصلا کل این احادیث رد میکنن یک دین یک شریعت یک معنای جدید از دین بعد از 1400 سال یعنی این دینی که اینطوری مسلمانان و مؤمنین بودن درش مناسب نبوده الان ما بیام بازنگری بکنیم به این شیوه یک مفاهیم جدید یک معانی جدیدی باید اختراع بکنیم چی میشه جامعه با این شنین فتاوه آیا این دین دین اسلامه لكم الاسلامه الاسلامه چه نوع اسلامی راضی بوده اسلام صحابه خودا هم همین خداوند در قرآن میگه سئن امنو بمثل ما امنتم بهی فقد اهتدو اگر ایمان اونها مشکی مثل شما شد یا اونهایی که بعد از شما میان مثل شما شد قابل قبوله فهم صحابه اینطوری نبوده درباره طلاق و اگر ما بخوام این احادیث درباره اطلاق که مسئله طلاق که در قرآن اومده رو تفیم میکنه اگر این احادیث رو نادیده بگیریم این کلی گمرغی های پیش میاد شخص میاد در حی در نپاس طلاق میده سپس بر می‌گذنند، سه تلاق می‌ده، اوب؟ چه قانونه؟ نه شیعه نه سونیش، هیچ کسی قبول نداره. کدوم قانون دنیا؟ حتی نصراتش قبول ندارن، حتی یهودشام قبول ندارن. در هیچ شریعتی نیست که شخصی خانمم طلاق بعد برش بگذنند. که چی؟ که نه من برش گذندم، پس دیگه روم حساب نمیشه. نه اینجوری چیزی ما نداریم. خیلی مسئله مهمه که خداوند ازمون راضی بوده ون اسلامی که بوده، اون اسلامی که قرون اول بودن و فهمیدن چه اینکه ما یک اسلام جدید رو نوآوری بکنیم در دین بر اساس و بگیم عصر زمانه خودمون الان بیام تشریعش بکنیم مثلا یکی از اون اشخاصی که کتابات زیادی داره میتونید بریم مطالعه بکنید و بخونید و ببینید مثلا کتاب های جمالبنا برادر حسن بنا کتابات زیادی داره میگه حجاب مثلا از اقوالش میگه حجاب برای عصر نبوت بوده به قول خودمون میگن نبی پدید بودن صحابه نمیشه چند جلوه شهوت خودشون بگیرن برایشون عادی نبود بی حجابی شاید تجاوز میکردن بر فاهرشون بر مادرشون بر حتی دیگه اون زمان بود که حجابو فرق کرده به خدا ولی الان لازم نیست اصلا کسی حجاب بپوشه اصلا عادی شده دیگه غربی ها دارم میان با حجابی برای انسان عادی شده چون عادی شده ما دیگه ملزم بیشت و خطاب خطاب خاصه در قرآن خطاب امهات المومنین بوده فقط در قرآن یدنین علیه من انجلابی بینیم این خطاب خاصه خاص امهات المومنین اینها انحرافات در اسلام این انحرافاته اگر ما ضابطه نظاریم برای دین اسلام حدود براش نظاریم هر کسی برای خودش یک دینی اختراع میکنه که رضایت الله برش نیست خداوند یک اسلام بر اعلان رضایت کرده رضیتو لکم الاسلام, الاسلام معرفه از چنور اسلامی ما همینطور که در صرف و نحب اجازه نمیدیم کسی فاعل را مجرور بکنه مفعول را مجرور بکنه ما اجازه نمیدیم اسم مفعول را با فاعل عوض بکنه همونطور که اجازه نمیدیم کسی این تغییرات را بده در علم صرف و در شریحات هم همینطوره کسی اجازه نداره قوانین کلی رو عوض رو کنه. یعنی قوانینی جزئی که روش ادله هست، نسل ثابت هست یا اجماع هست، کسی بیاد خارج از اون اصولی که علما گذاشتن بیاد استخراج معانی جدید بکنه. پس ما باید بدونیم که لازمه این دین اسلامی که ما قبولش داریم هرچند که بعدن بحثش خواهد اومد که این دین اسلام شامل قبول داشتن اسلام، همون ارکان ظاهریش از نماز و روزه و شهادت الینا و و مسائل ایمان ان تومن بالله حدیث و لکه حدیث جبرئیل با احسان که شامل اینها هست که هر مؤمنی باید بدونه ان شاء شرح بعدن داد و لیکن اینجا به عنوان شناخت کلی درباره دینی که ما باید بدونیم وظیفه هر مؤمن است بدونه درباره دینش به عنوان یک مؤمن اینه که که خداوندی که واحده دینی را آورده برای ما که ناسخ ادیان پیشینه ادیان گذشته است و این دینی که آورده مناسب هر زمان و هر مکانی هست این نیست که این دین خاص صحابه باشه به خاطر همینه که رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرمایند زمانی می زمان آید که کسانی میان اجر پنجاه تن از شما اصحاب رو دارن کسانی میان اجر 50 تا تن از شما چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم چون مرا ندیدن ولی به من ایمان دارن مرا ندیدن ولی به من ایمان دارن ولی زمان صحابه ریش گذاشتن عادی بود پیراهن کتاه کردن عادی بود رسول الله هم با بود همه مؤمنی همچنین بودن کسی چرعه نداشت مؤمنی رو تحقیر بکنه مسخرش بکنه یک مسخره میکنم ببینید مسلمانات چقدر شکم گنده کردن چی, آ... چی آیاتی نازل میشه آیات سوره توبه قل ابلله و آیاتی و رسولهی کنتم تستهزیون؟ مسخره میکردید در الله و رسولش حکم کفرشون میاست استهزام مزخره بدید حدی بود برایشون یک نفر این کار کرد مسخره کرد فورا اومدن نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما شوخی میکردیم شوخی در این, این مسئله نیست قد کفرتون بعد ایمانتون کافر شدی بعد ایمانتون خب اون دوران بود ولی این دوران یک شخصی بخواد فتنه هزار تا مسخره میشه میخواد پایبند بشه از دو سرتی از اون مدرسه از استفزا و مسخره و همه اینها واقعا همون طور که بد الاسلام میخوان بد اسلام و غریبه و سیعود غریبه فطوبه للغرباء اسلام غریب بوده و غریب خواهد شد واقعا الان دین اسلام دین غربتی هست که القاضی رفیق القابذ علی الجمر کس به دینشو حفظ بکنه مثل که سنگ سنگ رو اخ رو در دست گرفت سخت واقعا نگاه نامحرم نکردن موسیقی نشدیدن کلن ملتزم دین اسلام شدن واقعا سخت چیز آسومی نیست به خاطر همین عجری هم که گذاشته به خاطر سختیش پنجاه را برای اصحابه یک مسئله که از قلم و از در تایید اون مسئله گفتم حدیث رسولت رسولت نیت تفرق سنت از قرآن جدا نمیشه تا حوث بحث از ارزشانه های قیامت کبران اون شخصی که میره از دجال روبروی دجال مییسته میگه تو کذابی چی بهش میگه میگه تو همون دجالی که پیامبرمون بهمون در احادیث خبر داده بود از اوصافت به ما گفته بود میاد روبروی دجال مییسته میگه تو همون شخصی همون شخصی که رسول الله به ما خبر داده بود که اوصافت رسول الله صادق گفته این در تعیید این حدیث یعنی این سنت جدا نمیشه این سنت بخاری و مسلمون تا قیامت و بدون خداوند متکفل حفظ قرآن و فهمش است چون قرآن اگر حفظ بشه ولی سنت حفظ نشه معنا نداره ولی روزی میرسه که فهمها نسبت به قرآن ضعیف خواهم شد و این نبی این معنا که دیگه نابود بشه روزی خواهد اومد که مردم ندونه نماز چیه بلکه خداوند متکفل به حفظ قرآن و سنت شده و این حدیث جدیال و این شخصی که میادم دلیل بر همین تضییه میده پس ما باید خدایمون رو بشناسیم دین ما رو بشناسیم، قدر دینمو بدونیم، بدونیم که خیلی دین عظیمیه. دینی هست خدا که خداوند مننت گذاشته که ما رو شامل اون قرار داده. یعنی ما رو مؤمن مسلمان قرار داده. اون دینی که خداوند خودش اعلان رضایت دا ازش کرده. و ورضیت لکم اسلام دینا و نبیه محمدًا محمد صلی الله علیه و سلم این بحث ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم این که شناخت داشته باشیم درش این بعدا شرحش کوتاه اومد ولی که خلاصه در 2 دقیقه با گفت اون چیزی که ما باید در رسول الله صلی الله علیه و سلم باید بدونیم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلام خاتم النبیین بوده و الگوی ما هست در رفتارش در عبادتش در طاعتش لقد کان لکم فی رسول الله اسوته حسنه برای شما در رسول الله الگوی نیکی هست در اون جهادی که کرده در اون زحمتی که برای دین کشیده باید این چیزها را بدونید باید سیرت رسول الله و اقوالش رو بدونید ملزنی بهش هستید فکر نکنید شما بگید من مؤمنم خدا را قبول دارم تموم میشه رفت نه در قبض سآل میشه پیامبرت کی بوده چه پیامبری را پذیرفتی آیا دنبال حرفش و سخنش بودی آیا دنبالش بودی اون کسی که من گفتم الگوی شما هست آیا رفتی که ببینی چطور بودی که اونطور باشی اینو خداوند در قبرت ما میپرسه. پس ما باید دنبال رسول الله صلی الله علیه و باشیم دنبال افعالش دنبال اقوالش تا اینکه مسلمانی باشیم که خداوند اعلان رضایت ازش کرده اون اسلام تا اونچنان باشیم که خدا ازمون خاسته واخر دعوان الحمدلله رب العالمین و صلی الله على محمد و علی محمد